ای خونبه های نافه چین خاک راه تو خرشی سای فرور ترف کلاه تو نرگس که رشمه میبرد از حد برون خوران ای من فدای شیوه چشم سیاه تو خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال از دل نیا یادش که نویست گناه تو آرام و خواب خلق جهان را و سبب توی زن شد کنار دیده و دل تکیگاه تو با هر ستارهی سر و کار است تر شبم از حسرت فروغ روخه همچو ماه تو یاران هم نشین همه از هم جدا شده هند. ما ایم و آستانه دولت پناه تو حافظ تمام برز این آویت که آغبت آتش زند به خیرمن غم دود آه تو